بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف و وسید المرسلین و اله و صحبیه اجمعین اما بعد ما بحث اختلافات و بحث بیماری های روانی که سبب اختلافات میشه من نمیخوام که گزارا فقط تری رد بشم و اون مطلب رو کامل نرسونم در کنار هر مطلبی سعی میکنم، تلاش میکنم که یک مثالی بزنم که اون مطلب جا بیفته من مثالهای می برای اون آخرین بحث هایی که شد چون من سری رد شدم خاطر اینکه به نماز برسم دوتا مطلب بحث برداشت نادرست و ظلم برای دوتا نیاز هست که ما از منزل نقوبت مثال بزنم بحث برداشت نادرست مثلا رسول الله صلی اللہ علیه بیاد وارد منزل میشه و می بینه عایشه مریضه سردرد داره برا بر رس... انا و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه منم همی که سلام درد میکنه. بعد رسول الله میفرماین اگر تو مرضی که من کفنت میکنم و نماز برات میکنم. عایشه ناراحت میشه. عایشه ناراحت میشه. از حرف رسول الله صلی الله علیه یک برداشت اشتباه میکنه که الله حتما منتظر مرگشه در جواب رسول الله میگه ها میخواید من ببینم که خوش باشه با زنانه برداشت اشتباه یعنی رسول الله صلی علیه میخواست دلداری بده به آیشه هست دیگری داشت آیشه برداشت دیگری کرد از حرف رسول الله صلی الله علیه وسلم که بعداً پیش شما میشه میگه من دختر بچه بودم نمیدونستم نه, نه بحث ظلم یک مثالی من زدن گذشت شما نبا بکنید دو تا ظلم در دو طرف انجام شد صفیه قضا میفرسه در وقت کی در وقت عایشه دو تا حبوب هم در وقت اون قضا میفرسه حالا تماس گرفتن و نمیدونم سلام علیکم سلام علیکم کردن و نمیدونم خوششیری میکردن همه این ها پا تو حریم اون زندگی گذاشتن هم همین قانوم داره همین مطاله رو داره از این طرفی صفیه اشتباه کرده از یک طرفی هم آیشه به قاطر همین رسول الله صلی الله علیه وسلم در بین دو تا اشتباه متقابل چکار میکنه؟ یه غاقت اون بکن مادرتون به غیرتش برخورد. چرا به غیرتش برکرده؟ اون زن اومده در وقت اون دفالت میکنه در وقت اون غذا آورده مهانه رسول الله صلی الله علیه وقت خودشه دوست نداره در وقت خودش حریمش شکسته میشه طبیع خصوصا وقتی که مثلا زندگی تعدد توش بیا هرین داره برای خودش هر کدوم وقت خودشونو اون داره بخواد این تماس بگیره اون تماس بگیره این به جای خودش خودشیری بکنه و غذا به سرش بشه و هر اشو اون همین کارو بکنه خود به خود در زندگی اختلافات پیش میاد اینها ظلم اینها مثلا این است که باید طلاج بشه درمان بشه مثلا جاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم درمانش میکنن یعنی رسول الله وقتی که عایشه مثلا اومد اعتراض کرد وقتی که رسول الله مثلا طبیعیه که خدیجه رو دوست داشته باشه طبیعیه یعنی عایشه بعد بپذیره قبل از عایشه هم بوده بعد هم بپذیره یعنی را چه قبل باشه چه بعد باشه فرق نمیکنه طبیعیه که شوهر همسرانش رو بچه هاش رو دوست داشته باشه طبیعیه که مرد دوست داشته باشه بچه‌هاش و همچنین اگر همسرم هم داشته باشه یا بخواد خواهرانش باشه یا مادرش باشه خدیجه اونها رو دوست داشته باشد خب اینجا وقتی عایشه تعذیب میکنه از حق خودش یعنی از تجاوز میکنه از حق میاد دخالت میکنه در امر رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی تا چرا؟ به رفقای خدیجه فرستادی رسول جواب میده تنبیه میکنه به عایشه که میگوید ای کاش اون حرف از زبانم بیرون نمیومد چی گفت مگه گفت که اون پیرزنو فراموش نمی خدا در عوض اون به جنون داد خب رسول خشی خشم میشه ناراحت میشه بعد میگه این نیروزت و حبه حبشو خدایا کامل گذاشته میگه ببین بحث محبت یک میزان دنیوی نداره محبتی که در قلب خدا میذاره خدا هستی گذاشته به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند یازال عبدی یتقرب من نوافل حتى احبه همچنان بنده با نواف نزدیک میشه تا اینکه من اون رو دوست داشته باشم سپس خداوند در حدیث دیگه میگه خداوند ندان میدونه جبرئیل که من فلانی رو دوست دارم اون رو دوست داشته باشه بعد جبرئیل صدا میذنه به عصبون‌ها که ای اشتگان فلانی رو دوست داشته باشی که خدا اون رو دوست دارد. سپس محبت اون شخص در قلب آدمیان گذاشته میشه محبت پس از طرف خداست که در قلب‌ها گذاشته میشه نمیشه معیاری یک دماسنجی گذاشت برای محبت که این مرد این زنشو بیشتر دوست داره اون زنشو بیشتر داره مرد باید توازن زندگیشو ولی حفظ رو بکنه ظاهر زندگیش که روز قیامت نیاد یک طرفه ولی که اگر مرد اشتباه کرد اون زن مسئول حساب و کتاب نیست که آن پیسر بذاره بله با توجه به این رفتاره بس خدیجه رو بیشتر از من دوست داری؟ اونجا این دماسن یهترین نشون میده که بله تو محبتت اونجا بیشتر در نتیجه تو ما رو دوست نداری نه که نیست تو ازان برداشتن آدرس سعی میکنه رسول الله حضرت یک ماه داره بکنه نکویشش بکنه کی تنبیه شد آیش خودش رضی الله آنها خودش تنبیه شد این بزرگترین تنبیه که هی ما گزدهش بکنه این کار کردی اینکار کرد دوباره تکرار نشه این تنبیهه یک نوع از انواع تنبیهایی که استفاده میکنه. بس مشکلات رو ما خودمون به زندگی میاریم ما خودمون سبب هستیم که خشم به زندگی بیاد ولی که راهکار این خش طبیعه آیش به غیرتش بر بخوره خشتی می بشه ولی اونجا باید آیش خشمشو فرو می که این آتش بهشان فرض بشه خاموش بشه وقال ده قرام ليا ده بحث الصفات المتعالى بجد الذين باقى المتعالى ممكن بعد ليا المتخين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير اگر مصدقون با تصقوا هستید یا شما در خشم میدونید خشم خودتون کنترل بکنین اگر المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس عفوا والله يحب المحسنين انهاه بدرجه احسان رسيدا با توجه به با توجه بتروك شي خصم خودشون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرميان باكي دا ابن عاوز ديات عمالي بهم بگو كبارد بهش بشن فرمود رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل لا تغضب ولا الجنه پا یک چیزی کاری بهم یاد بده که بهشتی بشم با اون نه لا و نه کل جنة. عصبانی نشو، بهشت. اگر مرد عصبانی شد، بذار این لیوانو خورد بکنه، اون لیوانو خورد بکنه. زن هم از یک طرف بشه میشه. چه زندگیه؟ مگه زندگی سکن نواد باشه اینجای که زندگی یک آتش آتشپزانی از خش داره فروکش میکنه، داره براشید. آتش آتشپزان داره شوله‌وار میشه، داره همه را میسوزونه اگر از میخوام زندگی منفایدار باشه باید متقی باشیم تقوی داشته باشیم باید کزم غیب بکنیم تزم... خشم رو فرو ببریم عقب بکنیم و جز مجسدین باشیم مقایسه و قیاس از ویرانگرهای زندگی هست ترازو گذاشتن که مثلا ما قیاس بگیریم مثلا بالفرس بگیم شوهرم من رو از خواهرش از مادرش بیشتر، منو بیشتر به خواهرش، مادرش یا اون زنش فرق نمی یک ترازوی میزان بذاره این میزان چیه که ترازوی بذاشته بخت اینی که مثلا من دختر فلانیم یا من اهل منطقی فلانیم من فلان خوبی ها فلان غذاها درست کردم فلان نمیدونم سیه سفر کردم برای مشکلاتش من تحمل زندگیش کردم و من ساختم و سوزوندم من کمتش کردم این مرد بی اینجا برسه ولی این زن جدیده اومده یا این مادر است خوشی بکشه یا اون خواهرش است فیاسه. من اینطوری من آدم خیر نیخوب قاله انا خیر گفت. من بهترم خلق دارین این نار من از از گل از اون کسی که از گلا فریده آدم تجزه کنم بود بحث فرق فروشی هست و این چیز در منزل داد. وقتی که اومدن زنان رسول الله صلی الله علیه و آله مثل عایشه رضی الله عنها حرفی زد به صفیه گفت که انها قطیره قد کوتو انزه قد رسول الله صلی الله علیه و آله تشکیک میشه والله لقد قلتي کلمه لو مزجت ما البحر لتتدف یک کلمه گفتی قسم میخورم ای عایشه اگر با آب دریا مخلوط بشه آب دریا کثیفو گندیده میشه آب پاکی از دست میده به خاطر یک کلمه یک کلمه ی زشت ای بو اراده از خلق خدا خود بینی خود خودشو بهتر بدونه فکر فروشی من بهترم اینجا این مقایسه و این قیاسی من بهترم سبب میشه که چی زندگی من بیرون بشه در این خودمون با دست خودمون چکشو و برداشیم دریم میزنیم دیوار دیوار زندگیمون رو داریم خراب میکنیم با مقایسه مقایسه سبب میشه زندگی از دست بره درست آن مرد شد نتونه شد باشه عدالت بکنه بلکه که راهش با دیوار افتادن با زور حق خود گرفتم نیست رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث کردن داشتید هیچ وقت رسول میگن در خشم حق خود را نگیری با عصبانیت نه خشم خودتون را بگیری اگر این کارو کردیم سبب میشه که خودمون زندگیمون اون سقف خونه مون چون خودمون داریم دیوارو خراب میکنیم پس دیوار خونه مون خودمون خراب نکنیم این مسائل در منزله نبوت گفتم می و رسول الله علیه و سلام درمانش میکرد. با یا نکوهش و سازنه چیزی که در اینجا به عایشه دارید یا وقتی که خمیده به صفیه گفت یا ابنه یهودیه ای دختر یهودی، پدر پدرش یهودیه و گری که ناراحت شد که چرا زنان رسول الله اینجوری به من میگوین موقع رسول الله اصلا چیزی چطور بود گفت که ای صفیه بدون که تو از فرزندان نوزان پیامبر خدا هستی موسی علیه السلام یهود تابش برمیاد به موسی و بدان که شوهرت رسول خداست چه برتری می‌خواد است که داشته باشه از دو طرفش به پیامبر خدا ختم میشه و ایران می‌خوان از خلق خدا بگیرن از نسبی انسان بگیرن که این نسبش فلانی این مال این منطقه از اون منطقه هست، این اینجوری اون اونجوریه هیچ کس نمیتونه بگه من از دیگری برتره. اگر انسان خودشو برتر برترزیونه حق به جانب خودش داد اینجا هست که اون مرد نمی میکنه. یعنی ما معدار میکنیم که اون مرد به طرف معاملی بکنه. اون مرد اگر مواظب خودش نباشه زن سبب میشه که اون مرد هم جهنمی نمیبیشه. چون داره چی؟ داره یک طرفه نگام میکنه یک طرفه قضاوت میکنه نمیدونره خوبم قضاوت بکنه در نتیجه این سبب میشه که توواون زندگی از بن بره. قالا اخه رو من خلطتنیم نرن، و خلقتهم من طين من اعتشم اون از گِل خب کی چی سبب میشه قضیه پیش بیاد یا کی بره یعنی اعتماد به نفس نه اعتماد به خدا مثلا این کلمه بعدن شرح اشراقین داد بعض یعنی بعضی میگن انسان وقت اعتماد به نفسش بالا باشه خب اعتماد به نفس یعنی اعتماد به نفس یعنی خودبینی خودخواهی ما خودمون رو بهتر بدونیم خیر اعتمادمون باید به خدا باشه نه به خودمون توکل به خدا و من یتوتشل الله تهو و حسب و خدا حسیل انسانه خدا هست که به انسان کمک میکنه. نه اینکه انسان فکر بکنه که با اون چیزی که کس داره میکنه به دست میاره با تلاش خودش بوده. که انسان فکر بکنه با یعنی تلاش خودش اون چیز را به دست رو و من تشعونه الا اینشه الله بدون که اون چیزی که اگرم تو تلاش کردی به دست رو در ازای مشیت خدا بوده. هیچ وقت استغفار نتو فخ نکن هیچ وقت به خودت کبر نبر یک جنبش کبره که سبب میشه انسان خودشو بهتر بدونه یک طرفشام ضعف شخصیت، شخصیت شخص ضعیفه والله فکر میکنه مثلا تو زندگی کم آورده من هر کاری میکنم این شوهره نمیدونم چسبیده به خانواده هی میگه مادرم هی میگه خواهرام هی میگه اون فنانی هی میگه ها خب احساس میکنه که دیگه کم آورده تو زندگی یک بیماری روانی گرفته افسردگی گرفته چون خودش رو تایش میدونه چون اعتمادش به خدا ضعیفه اینو بدونی والله الله رنگ دستست ندان این نار خدا در گمان نیکر انسانه یعنی اگر انسان من گمان نیک داشته باشم خدا در روزی رو باز میکنه خدا در روزی باات خواهد کرد ولی که بگم من نه خدا نگام نمیکنه خدا وقت من نداره من انسان فلانم من مجموعما بخواد رو نکویش به خدا بکنه در نفروش به خدا باز میکنه، بیا با مقاینه و قیاس نکروست تابلیتوشن اون نوشتن سبب میشه که خودخوری بکنه سبب میشه که سبب میشه که زندگیش ارزش الان حالا مقاینه و قیاس شاید با همسایه باشه شاید با خواهرش باشه مثلا میگه خواهرم شوهرش خوبه خواهرم بهترین زندگی داره ولی من زندگی خیلی بده ولی من آسایش ندارم آرامش ندارم خب میاد خودشو نیفیهش میکنه خودشو یعنی ذات شخصی سبب میشه که خودش خود خودش بکنه خود نفس خودش رو بخوره با خاطر ضعف اعتمادش به خدا یا تکبر خودش رو بهتر میدونه همه رو تحقیر میکنه یا خودشو کوچک میشونه به اعتماد به خدا نداره تر میشه خودشو تر زمینه کنه که نه آخرش یعنی انتهای مقایسه و خیاض چیه نکوهش ترزنش یا به دیگران یا به خودمون یا دیگران ما رو دوست ندارن ما نمیخوان ما رو فلام میکنن ما رو نمیدونن یا میای همه ها رو سر دیگران این این گناه ها رو سر دیگران یا اینکه سر خودمون میریزیم این عاقبت نکوهشه عاقبت مقارنه و قیاسه که سبب میشه ما از لحاظ روانی نابود بشیم یعنی خودمون رو نابود میکنیم با قیاس بدونیم اگر قیاس خوب بود ابلیس نمیگرفت با اون قیاس بعد سبب شد از درگاه خدا رانده بشه کاری نتونیم با مقارنه و قیاس از درگاه خدا رانده بشه حقید خدا بر ما گذاشته انجام بدیم نیام توجه مول آقا فلانی غز شد نوگ زد بیرون از کنه خودتو آزورده نکن به خاطر همسایه به خاطر دیگران زندگی خودت بچن به شوهر خودت و بچه خودت بکن با توجه به خذاوت دیگران خودبینی خود بکنی و بخوای پیجش یا به قای نمایی میکنی یا مزریم نمایی میکنی پیشوحت. که دیگران میگن، دیگران میگن به خودشون میگن. خودشون او خودشون، خودشون روز قیامت کهشون میگیرن، گندنشونو میگیره. حساب کتاب میکنه. اما اینکه تو چون دیگران گفتن من بیا نابود خودم نابود بکنم یا خودم طلاق خودم رو به دست خودم بگیرم، چون دیگران میگن، دیگران بگن. ما نمی تونیم جلوی دزدی کردن مردم ببندیم. به خاطر همین خداوند میگه از من متأسف، محبت من مصلح باشه براتو نه مردم نه نزعت مرد اتکشو نه ناس فاللله حقا انت تشو من قررم ان راضی بکنی فالله حقا انت تشو وقتی سن از خدا بترسی یعنی هر چیزی که مطرح باشه برای م... م... م... شخص مؤمن خدا از ما راضی باشه من کاری میکنم به درگاه خدا شوهرم از راضی باشه دیگران که میخوام بگن بگن به خودشون هست انتقام و عقوبات بخشی از زندگی است خصوصا این هست انتقام بجن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا بعدها جهازان دشمنة بعضها جهازان دشمنة بعضها شوهران دشمنة ولكن إن دشمنيها وإن بديها وإن ظلمها بادر مقابلش كتابيا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم عاد صح وفراد قذاش عاد بكونين وشش بكونين ساک رو کنیم یعنی چش ببندیم ظلم رخ میده ولی اگر گذشت نشه عقوبت میاد جاهای جا عقوبت لازمه نمیشه عقوبت نکرد مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم من گفتن من از منزل نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلام از حجه الوداع برمیگشتن در حینی که گشتن شطور استفیه پاش شکسته میشه حالا میگن چه با مثال صفیه الهی میاد منزله نبوت حال خیلی حسادت می‌آید زنان ذرنا رسول صلی الله علیه و سلم به سفیر، چون هم لقائی خدا شد یک قسمتش به نسبه یکیت نفرت بیزی از بقیه ذرنا رسولش دیووتال بوده، چنانچه در بعض ذرنا وایت ها آمده است. Allah نمیدونم شاید به چیزهایی که داشت در صورتشام بوده، یک سری کمالیاتی سفید داشته که دیگران نداشته. شاید سن نشام بوده. خب داش برگشت رسول الله صلی الله علیه و سلم شو تو رسولی پاش کردنی شد. زینب بنت جحش رسول الله خداوند عقلش بود بهان انتقاد میکنه یاد رسول ارزش درخواستی رو یادش درخواستی میکنه از کی از زینب دو تا فطور داشت گفت یه کاری شدی تو قرض بود به صفیه گفت اَشکرو یهودی تو روی رسول در اومد جلو رسول الله استاد به زن یهودی قرض بدن به زن یهودی قرض بدن رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اونجا دیگه باهاش حرف نمیزنه زدنه حالا طلاق افتاده نه افتاده دیگه خدا میدونه که خودش میگه که رسول الله ای بن حجب و من حرف نزدت بعد از که برگشتی محرم حرف نزد سفرم حجت الوداع بود سفرم حرف نزد تا ویل اول قبل از وفاتش دیدن که سایه رسول الله صلی الله علیه و سلم از کنار خیمه رد میشه سایه که دیدم خوشحال شدم اون خوشحالی که شاید انسان و ارزش تمامی دنیا ازش بالاتر باشه یعنی ارزش از تمامی هر چیزی دنیا بالاتر باشه چنان که خود دین علی میگه میگه وقتی اون لحظه‌ای که رسول الله با من صحبت کرد بعد از این تنبیه انتقام انتقام نیست که عقوبت الهی این کلمه است که رسول الله صلی الله میشه این تنبیه میگه تمامی هر چی داشتم در خدا دادم به خاطر اینکه بزرگترین چیز اونم رسول الله الله علیه و را به دست جاهای من تنبیه میکنه به باشه این تنبیم اگر کسکه اگر تلاقه به مسلحت ما خودمونه و تقدیر خدا بودی اگر روح داده بشه شاید زنی به خودش بگه چرا من تلاق داده بشم چرا من مثلا این محضه تلاقم یک بار داد من این محضه نمیخوام بگونید اگر طلاق گرفتی که رسول هم بناش تلاق داده همونطور که به حفظ تلاق داده چنانچه در صحیح بخاری اومده و رسول الله, هم با هم الله صلی الله علیه وسلم به خ رسول الله صلی الله علیه و آله کریم ده شنبه تری کرد اومد بیرون دیدن که رسول الله صلی الله علیه و آله از نواش آب میکشه گفتن که یعنی واسه نه تا دندون داره بعد با کلید دادن بسری میکنه اتفاقی ادن میاد اومدن گفتن که دهانش توی فلان چیز میده انتقادی از اهل رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و آله حت شده یتیم ما رفت توی مسجد خیمه زد و نیومد که سلامش سلامش هم دیگه فکر کردن دیگه تموم شد خیر دیگه تموم شد گذشت بعد آیات نازل میشه این گفتون نتوردن حیات الدنیا بعد آیات آیات نازل میشه که اگر شما قرار دنیا بخواید اگر شما دنیا را میخواهید بدونید که زنانی هستن اخروی که ما جایگزین شما را خواهند کرد اگر شما بخواید به ربشتون ادامه بدید بخواید به پیامبرمون اذیت کنید بدونیم اگر شوهر رو اذیت کردیم بدونیم اون اذیت آزار از طرف لعن فرشتگان نتیجه‌مون میشه از طرف دیگر خشم خداوند این ویرانی میاره تو زندگی، زندگی رو نابود میکنه. هرچند که ما میگیم یعنی باید عصب داشته باشن طرفه، ولی که اگر تو زندگی پیش اومد یکی از اون حال در ما اینطوری بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به کار برده ما این نمیگیم که حالا باید هر که رخ داده ما باید اوگوگیری بکنیم. خیر، ما بسمون تسلیته، دلداریه. اگر رخ داده شوهر بدونیم که بهتر است ما هم بودن، این چنین عقوبتی از شهر شد به خاطر این دیگران یاد بگیرن که زندگیشون رو محکم نگه دارن و پرمید بکنن از اون چیزهایی که زندگی را اون نهاد زندگی را از بین میبره یا دگر دونش میکنه. از جمله بیرانگرهای زندگی منفینگری هست. وقتی منفینگری خدا رسول با مثال میزنه مثال ابراهیم علیه السلام وقتی که میاد سر میزنه به پسرش اسماعیل. یک زنی تنبیه شد با یک منفی نگری بدبینی نسبت به خدا بدبینی نصفه به رسولوزی و رحم خدا و لطف خدا اومد نزد خانمش دن زد اسماعیل نبود گفت که خانوم چطور زندگی گفت که زندگی نه آب داری نه غذا داری نه قرار داری میچی نداری گفت که اگر چون هر افیمت که اون چارتی به دلت عوض از دارد اسماعیل و بیه که بلی تیرما بی اومد و گفت چارتو بخونم تا عوض کنم گفت خب چارتو بخونم چی بس تلاقی بس برو کنی یه اونو فرستاد पुरे پدرش طلاقش داد با خاطر چی به خاطری که اون زن اهل خدا نبود چون اهل خدا بود اگر خدا رو دوست می‌داشت خدا ترس بود هیچ وقت نمیومد ای بس خدا بگیره منم اینطوری خدا به من ظلم کرده خدا به من نداده من تو این بلا و اون بلا این ندارم اون ندارم بس میده نفسده با خدا بار دیگر ابراهیم میاد زن دیگر گرفته اون زن میاد میگه الحمدلله رحمت خدا هست زیر سایه لطف خدا هست بازیم از قسمت خدا میگه اگر شوهر تو من که چارچوب خونه تو نگه دار میگه بله چارچوب خونه توی و گفته تو رو نگه دار حدیث شم میگویید حدیث در بقاری هست شماره سه هزار سبسیل هست این منفینگری بدبینی انسان نمیتونه با زندگی بکنه و از زنی بخواد بدبین باشه منفینگر باشه نمیشه حتی مردش مرداشم اینطوری هم باشه یعنی اگر مرد سیدی از بدنش گیر بده ها بخوای کره دیریو داری با پسره با فلانی با پسر دف... عمو با پسر فنان با پسر, پسر خالت نشسته بودی بدبینی و شکاکگی و منفینگری نسبت به زن سبب که دیگه اون خونه استحکام خودش رو از بده و خونه ویران بشه پس خلاص بحث رو خلاصی میکنیم جنبنی میکنیم منشأ ویران گیری های زندگی یکی جهل نسبت به حقوق زن شوهر حقوقی که بر هم دیگر واجبه این حق زن داره حق شوهر داره جهل به اون حقوق ها سبب میشه که زندگی ویران بشه جهل به طبیعت و سرش مردی طبیعی داره زنی که تا قبل این مسائل توضیح دادم خلاصو دارم میکنم بحث جهل به عاطفه این که تو زندگی باید عاطفه بحث بوسه رو کردم بحث اون طرفای اشقامیزو کردن بحث ارتباط فطری بحث همبستری و اینا کسی که جه برستد این ما داشته باشه اهمیت نده سبب میشه که زندگی خراب بشه از جمله منشأ های زندگی هوای نفسه هوای نفس زیاده هوای نفس سبب میشه که انسان ظلم بکنه سبب میشه که تقصیر بکنه در حق شوهر نه به زندگیش هی بچسبه به این در اون در کنه پدرش مادرش حق شوهر رو پایمال بکنه هوای نفس سبب میشه که وسواس پیدا بکنه شکاک بشه تو زندگی هوای نفس میشه که خود بین بشه، بد بین بشه. یا خودشو بهتر میبینه یا دیگران رو بد میبینه. وقتی که خود بین میشه، خود به خود دیگه دیگران رو بد میبینه. این فقط روشی می‌کنه و اون چیزهایی که گفتیم پیش میاد. هوای نفس باید درمان بشه. تکبر، قیاس، اینا همه بحثهایی که گذشت. همچنین از اون منشأ ها مداخلات دیگران هست مثل خیشاوندان یا دخالت شیطان، نزقات شیطان پیش میاد. یا گناهان هست. یعنی من میگرده که تو زندگی اختلافات پیش میاد به خاطر گناهان یا زنش یا مردش یعنی مثلا زن بد میشه یا مرد بد میشه به خاطر گناهانش اون زنی که اون مردی که مثلا رابطه نامشروع داره با این دختر و اون دختر خب اون, اون کسی که تو بیرون قرار داره رابطه با شوهرمون داره یا با اون شوهر داره سبب میشه که اون زندگی از بین بره گناه اون مرد سبب میشه که اون زندگی زگرزین بشه و از بین بره شيطانم که گفتم عرضشو بر دریا داده خوشحال میشه اگر زندگی درش احساس بیاد درش آشوب بیاد خوشش میاد فکر نکنی که خدا ذاتو راضی میشه خشن میشی فکر نکن خدا راضی میشه اگر بخواد که گیر بهش بدید گیر واسپدید چرا جواب پیامم ندادی چرا جواب تماس هم ندادی مردم بهترن از من تا تو جواب فلانی رو میگی جواب من نمیدی رفیقاتت تو بعد من بهتره هی و رفیقتی بیروت زورت میاد با من بره بیرون اینها دخالت های شیطارت زندگی درسته اگر میتاید حق تو به طلبی اگر ناخق می کنید اون تو هر حق تو با خوبی دیگه نه با و با نکوهش و سردمش و پرخاش حل مشکلات چونه مشکلات را حل بکنید راه حل حل مشکلات زندگی مشکلات زندگی چند تا سبب داره یکی از اسبابش مشکلات روانیی که ما داشتیم یکی از مشکلات مشکلات اجتماعیه یکی از مشکلات مشکلات شرعی یعنی همون چیزهایی که الان داشتیم به اصطلاح دیگه یعنی یک سری بعد میگرده به روان خودمون خودبینی و کبر و هوای نفس و خشم و مشکلات روانیه یک سری مشکلات اجتماعی دیگرانه یک سری مشکلات شرعی بحث حقوق و واجبات و اون چیزهایی که شرع مقاصد تو زندگی نداریم. من یک قصر آوردم فقط یک مثالی هست. که مثال حقیقی هست، واقعی هست نیاز داره که ما آدرسشون رو نمیدنم بقام که کی گفته کی نگفته مهم عبرتی هست که در این قصه یاد شده از زنی فرسیدن زنان زیباتر و خوبتر از تو زیادن ولی چرا شوهر از کرا زیباتر و خوبتر از می میبینن پاسخ میده اون زنی میده آنی خوبترین زیباترین ولی در مقابل حد اقل اینگه لعاقل به شو اندورش را میشند اگر غم داشته اندور داره اومده نمیگم هی تو اومدی کاسه تو در رو سر میکنی تو اثر همیشه پیش من منمریی تو برداد پیش من میاری هم. اگر بخواید این کارو بکنی خود رو نابوع کردی اندش رو میشنود. و در مقابل خوبی هاش تا از نمی میکنن دست در نکنه ممنون خع میکنه و در مقابل پیوتری ها فنااعت تحمل که حمل تو خونه نداریم شوهر نداریم لازم نیست که تو قسب تو مشکلات اندازی. این چنین توصیه دین که مهربان و متیع باشن خدا امو کرده هر هرچند خارها به قسم فروره ولی همچنان گل می یعنی هر هرچند سختی تو زندگی میارم به زن دومی اسماعی. هر هرچند تو زندگی بدی ببینه ولی بیگه الحمدلله شبگذار خدا درهای رحمت خدا بازه شبگذار خدا مثل زن چید؟ زن فرعون که مثالی شد برای تمامی ماها هممه زنش هممردش آسیه و الله اللهم مثلاً لیل اللذین آمن رأة فرعون اذقانت رب بنی عنده بیت فی الجنة زنی فرعون آسیر بی صلیم زنی چون دلشو با خدا وسیع بود و وسیع کردی بود و حس زن با خدا داشت و دلشو با آخرت وسیع بود همش دنیا نبود الا شوهرم بدستور دی الا شوهرم به هد جست و جوار رف ترو بیرون بور ترو به هد داد مال دنیا رو به هد داد باید با خودت مخیتی قلب ببری اون مبلو اون سارسو اون نمیدونه وسایل زندگی میخواد تو کف خودت بری انسان بدونی وقتی که تو کف پابنده بشه یک کفنی هست پیش توی کفن ما رو میپوشونن بعد نجیب داره نه چیزی داره نه میتونیم با خودمون هم بکنیم سلاهام از دستمون بیرون میارن توی نعش ما رو میذارن روی کف ما رو هم میکنن میبرن، تابستون توی کف میذارن پشت بهمو به میدن رو میذارن خاک میریزن ان لله و ان الیه راجعون خودش کسی نمیکنه چند تا میخوام بگم. اینا به دست آوردین مال دنیا. اینا هم شوهر رو به دست آوردین. بعضی از زنا هستن. سبحان الله برای اینی که مثلا مردی رو با خودشون جذب می‌کنن به چه دلیلی که نمی‌زنن. حالا مثلا به فرض دیدن کلام مقصود خصوصا من گفتم اینها زیاده در خصوصن تو این جامعه ای که ما داریم ضعف ایمانش هست. به دنیا زنا دنبال یک مرد ثروتمندن یا اون مردی که پول داره. میخوان به هر نحوی اون دختراش میخوان به هر نحوی به اون مرده برن. به هر نحوی میخوان خودفیرینی بکنن و یا با پیامم یا با کسفر استادر یا با تماس گرفتن اینها ها و ستیزهای شیطان بر علیه انسان که انسان باید مواظب باشه و اون مرد نباید خودشو در عرضه این چنین زنان قرار بده زن راحت عقل انسان رو میگیره اون مرد نباید خودخواه باشه نباید اون مرد مغرور به خودش باشه بگه حالا من ایمانم قوی هست من این زن بذار اواغده رو خالی بکنه تو زندگی مشکل هر حقشو میشنن. ای مرد فریب نکن. اون زن میخواد سر فریب بده. اون زن میخواد سر تو رو شیر رو به ماله. پشت به زندگیش میده با خاطر که فلان خاممه خودشیرینی کرده خودنمایی کرده و رو خوب جلده داده. اون زن روباه شده و میاد با اون خود خودشیرینی کردن زندگی رو خراب بکنه و از هم بپشونه. حل مشکلات آخرین مطلبمون، بحثمون. الا تو زندگی مشکلات میاد تو هر زندگی شاید پیش بیاد یک یعنی تصورش ها تو زهن بردی بیاد آقای جوهری خودش میگه انگوشتر دبلوش میگه چه بهش میگن حلقه. حلقه میگه حرامه از طرف خودش هم حلقه گذاشته بعد نوشته سخترین شکست چه منظوریه چی هست توش ما چیزی تو شرد اسم انگشتر حلقه نداریم بدعتی از بدعک ها هست تشبه به مشرکین و مجوسه این چیزی تو سنت ما تو دین ما از اسلام نیست انگوشتر حلقه هرچانکه این عزباب رنگ فقط اینجا من آوردم این شکل که یک تصوری تو زهر داشته باشیم خواستم با این مسئله فقط یعنی که شکلها سبب میشه یا افتها سبب میشه که تو ذهن یک خاطره بمونه یک یعنی اون مسئله که میخوام بگم تو زهنتون بمونه زندگی چیه؟ دلا درست؟ طلاق. این که دو نفر از همدیگه جدا بشن چی چی سبب میشه اون دل شکسته بشه اون خنجری که قلبی رو داشتم توش تا اون داره اون زن حسرت بکشه و اون مرد حسرت بکشه و اون بچه ها خار بشن چیه؟ طلاق چرا ابلیس خوشحال میشه؟ ابل... شیطان های دیگر آموش میگیره روی عرشش؟ چون طلاق ایجاد کرده چون با طلاق زنهای فاحشه ای که تو کوچه و خیابون میبینی شاید 90 درصدشون متلقه هستن زنهای پاک هم مطلقه صابر نشاستن ولی اینکه خیلی از اون زنان فاحشه مطلقه بودن این یکی از اسباب سبب دیگه ای اون پدر دیگه به بچه بچه‌ها نیست ای مادر اگر شوهرتن بده مثل آسیه صبور باش آمن فرعون. بزار اون و ضرب الله مثلا للذین آمنوا را تفروا بذار اون زندگی صبر تحمل کن ولی به خاطر بچه‌ات به خاطر بچه‌ات شوهرت هر چقدر بده هر چقد نمیدونم دونم زون در حقد میکنه ولی به خاطر خدا کوتاه بیام و این مثالی که خدا میزنه سبحان الله خیلی از مشکلات بهمون مراجعه میشه طرف میاد میگه مشروب مشروک خوره رو کتک میزنه فلان میکنه تفکر داره که من هم رنجش بشم من بهش بگم, بگم، کی تو کی گفته تو زندگی تو خونه این مرد باشی معلومهن اصل عمل مردها و مادر قاهر برادر اینطوریه فورم بهش کی گفته تو خونش باشی خب بیا بیرون طلاق گفتید طلاق حل حلیه ما میخوام مشکلات رو حل بکنیم خدا اگر مثال آسیه را میزنه و عبرت الگو درش برای ما میسازه و خدا اگر مثال میزنه و ضرب الله مثلا مثال میزنه که الگو میگیری به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شوهرت هر چقدر باشه فرعانی هر چقدر شوهرت پست باشه هر چقدر شوهرت ظالم باشه یو قتل و ابنائه و یا سعی بچه ها را بچه از مادر میگیره میکشتر این قد ظالم بود می تویدون مردم هم می ولی که این چوهر ستمگر، اون زن تحمل کرد بخاطر خدا اون شد برای تمامی بشریت خاطر صبر و تحملش پس راه حلش تلاش نیست، صبر و تحمله و دعاست سبر، تحمل، دعا دعا می کرد دست به دعا برداری فروردگارا مشکلم حل کن فروردگارا غمم حل کن فروردگار رسولات سالسلیم می فرمویند کثیری میگه لا اله الا الله ان اینی انی من الظالمین مگر اینکه غم و افسردگی حل بشه این ذکر و این ورد همچنان چنان در زبانت جاری کن جاری ساز صلوات بده همچنان چنان صلوات بگی تا اینکه خداوند غمات حل میکنه شیخ میگه حدیث صلوات که خنده بوده بیاد اومد یه جوونی اومد در قینی که چنگون اومده بود بیاد اومد اون حدیث جوون اومده بود گفت میخوام خودکشی کنم بیادو بردم تواب و فضیلت صلوات گفتم به اون جوان یک ساعت مشکلی نیست که مرگ خودت خودکشی خود را به تأثیر بندازی گفتم مشکلی نیست گفت گفتم گفتم خب پس یک ساعت برو تیم مسجد بشین بین نماز مغرب و عشا الان وقت هست عصر بین مغرب و عشا بشین فقط صلوات بگوست. به هیچ کس نظر گفت باشه تا عشا گفت رفت نشست این مسجد بعد از عشا و منطوف درهای رحمت برقرر فرانی شد دیونه شده بودن زده شده بودم عقلم مثلا پریدی بود عقلم داشتم چی شده بودم شده بودم سلوات اومد اون شیطان اونو ایبلیس ازش دور کرد غمشو با اون آب و گوارا خدا شد اون آب رحمت اون لطف اون باران ذکر اومد غمشو حل کرد پس هی نیایی با نکوهش و ترزنشو خودخوری زندگی بکنیم راحل مشکلات جدایی صبره و دعاست اینجا در این یاد از همون آسیه دست به دعا ورد رب ابنی که بین کنی یاد از خدا کرد و بهشت خدا از خدا بهش میتلبی از خدا بهش بته از خدا خوبی بته و هم مقام مشکلات و آم راهای اشاره داشته برای هم غم مشکلات اون ذکر ویرق بر سر زبان اسلوات لا اله الا انت والله اللهم إني عبدك ابن عادك ابن عاد ابن اماتك ناصیت بیاد این ذکر را همچنان بر زبان سرازی کرد کلماتو تکنیش بگو, بگو. اینها غمتو حل میکنه راه های حل مشکلاته پس هیچ وقت تو ذهنتون هم خطور نکنه که حل مشکلات راه حلش تلاقه رسولان صلی الله علیه و سلم میفرماین هیچ زنی نیست که بدون سبب از شوهرش تلاق بقاه مگر اینکه که بهش به مشاقش بهش بر اون زن حرام میشه به خاطر اینکه طلاق تلاق میخواد از شوهرش راه حل زندگی تلاق نیست بل جاهای می... یعنی میشه که راه حل گشاش ولی که نه هر جا بلکه شوهر زنخاره بده ولی که این که موتاد راه حلی دنبال درمانش باش نه اینکه اون اعتراض بکنی و فکر بکنی جدایی راه حله یک سیری مشکلات زندگی من ناخورید الان فقط اساسیات زندگی رو میگم که بعد بپردازیم که مشکلات با چه دونه با حل بکنی همیشه باید بدونه سکندار و راننده اون کسی که فرمان دستشه تو زندگی باید باشه کلکم راین و کلکم مسئول و عرقیت مسئول تو زندگی کیه؟ مرد مردی که فرمان ماشین دستشه شما ترقا داشته باشید مردی فرمان دستشه تو زندگی رانندگی شما به عنوان یک زن به قلص نشرتی فرمان رو میارید این بر او اون ماشین جلو این از اون طرف میکشید از این طرف میکشید بکنید تالم به مخصف میرسید اگر اون مرد توواش از دستت بده این زن اینجا بکشه، پدرش اینجا بکشه، مادرش خواهرش فرزندش بخواد هر کسی به این طرف و اون طرف بکشه، اون مرد از ازذت می‌ده بدونید که مشتط زندگی را باید مرگحل بکشه بکنه. و سکاندار زندگی مرد و زن نباید دخالت بکنه تو امور مرد پس همیشه تو ذهنتون باشه، مرد که رانندگی می‌کنه. خنگار رو روی هم چیده شده سنگ ها نمادی از توازنه زندگیمون اینطوریه مثل سنگ روی هم گذاشته شده فکر نکنید که زندگی ها همه محکم نه زندگی ها سنگ ها روی هم گذاشته شده هر می لرزه خدای نکرده سبب نشه لرزش ما لرزش ما سبب نشه که بیفتیم از اون بالا جای رخ بده ما الان راحل ها را میگیم برای اینکه جدایی پیش نیاد، سنگ نیفته زندگی خراب نشه. اولی این مطلب در حل مشکلات وسط دنبال سبب باشیم سبب جوهره خانواده‌شان یا بچه‌‌هاشان، سبب کیه؟ اول دنبال سبب، نوعش اون مرد زناکار یا مشکوک فارق، فرق اگر مشکوک راحلش راهلهش جدایی نیست. باید سببش نگاه بکنیم بعد مقدارش. مقدار اون مشکلات آیا به حدی رسیده که منجر به طلاق باشه؟ اگر خانوادهش سبب خانوادهش خانواده که دیگه باید بریم به خانوادهش صحبت بکنیم که که دخالت نکنه تو زندگی دخترش یا زندگی پسرش اگر مشکل شوهر باید مقدار مشکل ادا بکنیم و گفتم مثال فرع رو زدن و گفتم در مقابلش در مقابل مشکلات اصل برثب کردن اصل بر دنبال درمان گشتن و اصل بر اینه که اگر مصیبت رسیدیم به مصیبتی انتقال شدیم بگیم قدر الله ما شاء فعال. وای را وین راه نندازیم و سر خودمون بذاریم مثلا به خصوصا برای زنا پیش میاد زن شوهر میره حبوب رو سرش میذاره اون زن دیگه اگر بهش میگفتن شوهرت مرده بهتر بود ولی خب غمی بالاتر از اون غمه مردش اومد و اونم حبوب دیگه اون زن نمیتونه تحمل بکنه دیگه اون زن دیگه از توانش خارج شده به جای اینکه بیاد بشینه بگه دین خدا من تحمل میکنم چون خدا گفته میگه نه من که نمیتونم باطلمن جور در نمیاد به جایی که بگه قدر الله و ما شاء فعل تقدیر خدا بوده هم خدا مقدر کرده که اسبابش فراهم کرده و ما تشاؤون الی ان الله و بمشیئه خدا رخ داده هم اینکه حکم خدا بوده حکم شرعیش بوده هم حکم کونیش که ما مشیئهش رخ داده هم حکم شرعی فانک حماطه لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع طب ما داد و هنجار راه انداختن ما سبب میشه که اون زندگی فرو بپاشه اون سنگ ها ریخته بشه بچه ها و خودمون چون ما خودمونیم شوهرمونیم بچه‌هامونه خسابوندانمونیم بین دایی ها و ها، بچه ها میشن بی عمو چطورین به مادرشون شدن بی عمه کلا از این خانواده زده میشه، درسته یعنی فقط شما فکر نکنید که من راحت خودم از این شوهر خیر این پسرتون این دخترتون بی خانمان شد فرقی نمی کنه با اون پسری که بی خانمان بی پدر و مادر نداره زنازاده دیگه کسی نداره بلا سرش باشه شما بچه تو اینچین احساسی نیکنه که من بی نوام بی هم کسی نداره پس صلاح راه حل نیست باید مقدارش رو نگاه بکنید این راه حل نیست که بگیم ما نمیتونیم من, من نمیتونم من نمیتونم من چی کم داشتم که این شد شدنم هم با تقدیر کن بگیم تقدیر خدا بوده و من به مشیتش راضی نکندشی ولی هو خیرن لکم عسى ان تکرهو شیئا دوست نداری میدونم کدوم دوست... زن دوست کدوم زن به تو سرش بیاد شما یک مثال به من بزنید کدوم یکی تو منزل نبوات میگه دوست داشتم میگه عایشه راضی بود خدیجه ازش بود کدوم زن راضی بود ولی که انسان وقتی که نیکنگر باشه که تقدیر خدا بوده خدا حتما مصلحت من خاصه بل هو خیرون لکن عز انتقرهون دین خداست پس خیریتش ها من سب میکنم این خوشبینی سبب میشه که همتون کم بشه اگر نه افسرده میشید معمولا این طوریه. تو زندگی اگر زنی حبوغ رو سرش دیگه همسایه پدر مادر همه میان آ چقدر نمک نشناسه این مرد چقدر این مرد ظالمه؟ میگه کاری کرده بودی دختری جوان تر از تو بود میگه به از تو گیریش میاد میگه چی کار کرده بودی این همه خوبی کردی این همه باش نمیگونم فلان کردی فلان کردی آخرش ززاست این بود ززاست این بود این مرد اصلا لیاقت زندگی نداره لیاقت خوبی نداره حیف تو حیف که تو بیایی به پای این مرد بسوزی آتش هیزون میریزن هیزو می بنز... هیزان که هیچ بنزین و نفس رو نمیدونم گازایی رو همیشه سی این آتش میپاشن این آتش شعولور خشمی که تو این همسر بدبخته دارن شعولورش میکنن با بدبین با بدکاشن با هیزان رویختن تو آتش به جایی که بیان دلداری بدن صبر به خدا داشته باش حد خدا خیریت خواسته میام چیم مثل کسی که شوهرش فوت شده برم بهش بگن بگن که بله خدا شرش از سرت کم هست عجب شوهر قصبی بود عجب فلانی بود حالا اون شوهر اون زنه بدبخت ولی هم دوست داره این زنه به نظر شما دلداری پیدا میکنه دلش خوش میشه با این حرفا بدبخت سکته میکنه وقتی که اینطوری بیاد حالا یا بچه شد شما یک مادری بچه‌ش از دست داده چقدر بحث فجور بود الحمدلله که خدا شرش از حالا مادری یکی هر دی رو بهش بدن نظر اون چیه چه این شخصی که به این مادر این شهر بیمیدنه و اون زنی که حضور رو سرش اومده همسویان میان هم به شوهرش داری میگن. پس داره با هم دیگه نز... چطوره که اگر به بچه تو میگاری گفتن نفری نشمی کنی برو زنی که پس به و فلان و هرچی که از زهنتو تو بدیگر از فروش بهش میدی نطارش میکنی. چرا؟ که اون بچه تو همچقدر باشه از کل مردم تمامی دنیا بیشتر دیتش میتونه. هر چقدر حوزه. اگر مشروع خواه باشه، دوز باشه، میمونه قطعه تنه تونه. نوح بیشتر از بارتر از نوح که نیستی؟ که گفت سازنده زنده من منه، پرورتگار نجاتش بده، بعد خدا سازنده سرزنشش میکنه. که چه چرا همچنین دعایی میکنی؟ پارتنه، ناخون از گوش بدا نمیشه. درست یا نه؟ باید نقبت بشه و هم همین ای همین این ای رواید بگاه داشته باشید. آیه زند، بلاشت رو بیرون. تو میخوای زندگی منو خراب بکنی؟ همونطور که اون شخصی که درباره بچه ات جنی هار از خونه میلادی بیرون، اون زن مبادب میلادی بیرون که تو زندگی دخالت نکنه. بدونید که این زن موریانه است، از موریانه که باتر این زن بنزینو نمیشه. دروغی آتش میگیره که زندگی که زندگیش رو. که خیلی سوژه نیست. دشمن توست، اون زنی که میاد آتش او آتش از پس باید مثل خدا خوش بین باشید. بگیم نه بگو نه خنجر بزنیم توی قلب اون بدبخت اون بدبختی که میناله ما بیام هی خنجر دیگه بزنیم توی قلبش بستر او را دونیم سازش حل مشکلات راهکار های حل مشکلات دارم داره لا یفرک مؤمن مؤمنه نه بگو مرد ناراحت میشه از زنش زنم ناراحت میشه از شوهرش متقابله ولی ای مرد بغض زن نداشته باش که اشتباه داره خدا توصیه اش اینه که چی چشم پوشی بکنی زن هم قرار نیست شوهرت پرشته باشه تو با پرشته زندگی نمی کنی باید بسازی باید بسازی قرار نیست شوهرت اشتباهی از سر نزنه بغض شوهرتو نداشته باش تو به خوبی ها الحمدلله قناهی داره الحمدلله یک کسی داره ترسین میکنه. و ما اصابکم من مصیبت تبه ما کسبت ایدی و یعکو عن كثير بدونید مصیبتی که به تو می رسه سببش دیگران نیستن. همیشه. همیشه. یک سری اسباب به خودمون برمیگرده تخطیر. مثلا میبینیم زن بیتابی میکنه من چیکار کردم خدا اینطوری میکنه اونطوری میکنه من سردر دارم مریضی دارم شوهرم اینطوریه هی به خودش سرزنش میکنه. بدون از دو حالت خارج نیست. یا اینکه خدا خیلیت تو میخواد اجراتو بالا ببره. همونطور که رسولان مریض شد، طنجره رو نیزه خورد از سرش فرق شد، همونطور که عموش کشته شد، همونطور که بچه‌هاش چهار فسران، از صد ست از پسرانش در حیات خودش خدا ازش گرفت ابراهیم و دیگه فرزانان خاسم خدا گرفت ولی هیچ وقت بیتا پای هاش بود چشمشن عشق میریخ و میریخ و این العین تدمع و این القلب یحزن چشم عشقی میشه و قلب اندوگی میشه پس راه حل این نیست که چی؟ راه حل این نیست که ما بیاریم نفیویشا سر خدا فدا چرا خدا به من اینطوری کرد چرا دردها رو خدا به من داد یا اینکه خدا من خواسته بله هو اخی مولاکو که داشتیم می‌کردیش بله هو خیر مولاکو یا اینکه خدا میخواد می‌خواد کفارهی من بشه مصیبتی که بهت میرسه خدا بدیکو نمیخواد با خاطر بدی خودتون ما عثا و به من تو مصیبه بما كتبت ایدیکو چیزی که خودتون ساختید مصیبت ها با دست خودتون می‌سازید انسانی که مصیبت بر خودش می‌سازه نه خدا حالا یا همسایگانن یا پدر و مادرن یا دوست و رفیقه مشکلات برامون میسازن. می سازن. خیلی از مشکلات جنگهای روانی هست حسادتت ترست میاد خونتون بعد بخور زدی تو خونه چرا بخور زدی؟ شوهرم میخواد بیاد عجب یعنی این خشوهر رو تو دو دوست داری؟ عجب ما اینطوری پس اصلا ما به فیرش هم پس باشه واسه شدی فیاض بدن ما میگه خب این ها گفتن بدون ماشالله اللهم بارک بدون اینکه تبریکی بگن بدون اینکه ماها بارکی بگن این حسادت ها حالا شوهره اومده خونه هم بوی خوشه ولی اون زنه دیگه طاقت خودش نداره افتاده دل به هوا کرده و داره میچیزه آتش میگیره خودش هم نمیدونه از کجا میناله حسادت خواهرشه حسادت دوستشه حسادت نمیدونه مادرشه بعضیا یا پدرام حقیدان مادران حقیدان مادر حسودته زندگی بفرش میاد تعجب می میکنه میگه چطوری باید شوهرت بری میسازی چطوری شوهرت تو دو دوست داری با شوهرت بده خب اینها اصلا میشه چی زندگی خراب بشه نفس خراب بشه دخالت های دیگران این این وقت مصیبتایی که دیگران برام میسازن چیزی میشه؟ چی ما مریض نشیم حالا راه چیه طلاق نه روقیه بشی خواهر بشی رو بذ طالب دار میبرم. تناح میذارم پروردگارو مشکلونو حل كور وضو بگی رو به قبله كور لیوان آب رو بردار نیازی نیبی پیشاغه جوهری بگی که من مشکل دارم میگم جدا بشم نه لیمان آب بردار مشکلات تو زندگیت اومد لیمان آب بردار رو به قبله کن 7 بار الحمد 7 بار قل هو الله قل احد 7 بار قل اعوذ برب الفلق 7 قل اعوذ برب و دم بده این کار 7 شب 40 شب انجام بده 40 شب انجام بده اگر زندگی که دوست داری اگر دوست داری خدا ازت راضی باشه مثل آسیه باشی که خدا در اش میگه وذرب الله مثلا للذین امنوا راکفعه اگر می اون تن شخصی باشی که خدا اینجنی تا روز قیامت یاد نیکش تو در قرآن گذاشت یاد نیکش رو گذاشت که عبرت باشه برای ما بذارید یاد نیکی ازتون باقی بمونه پس زندگی رو با حل کرد مشکلات رو حل کرد. خیلی فقط فقط فقط گذاشت چرا نمی خدا بهتر میدونه از مشکلات زندگی حسادت دیگرانه زنه بیتا به زنه بی به خاطر دیگران حسادت میکنن خواهر قبل از طلاق قبلت قبل از جدایی قبل از بیتاوی آب رو بند تو خودت رو بکیر اگر خدا رو دوست داری آب را بردار با نیت قلبی که خدا به تون چه بده از خدا بقاید دست دعا برداری فردگارا مشکل رو حل کن خود رو روی کن و با صدای بلند روی اون آب بخون این راه حل مشکل مصیبت نبی کرده بدبختی ها هکیری بدبختی ها برمیگه خش غذت لا سقضن با مشکلات تو زندگی چون طرف این خاطر اون خاطر هر دوتو کلهشا یعنی یکی از راه ها صبر و تحمل کردن و تشکر کردن و کاظمینه الغیظ قبل از اشاره بهش کردن از راه حل ها تو تا اومدن حبطوس ای خواح ولی تو بیا شوهر بدی کرده شوهر فلان کرده ولی تو کوتابیا به خاطر بچه‌ت به خاطر خدا نمیگم قبل از بچه‌ت به خاطر خدا اخلاص داشته باش. این عب... این ازدواج گفتین یک عبادته و ما خلق و خلق الجن والانس الى ليعبدو الزواج یک عبادت چون خدا هست که با اذن خودش فقط ازدواج را به ما داد با یک کلمه زواج تو و قبل تو با این کلمه با همدیگه حلال شدی پس این عبادت اگر میخوام پایدار بشه باید فوت‌ها بیاییم هر از راهکارهای حل مشکلات یادگیری تعامل ما گفتید یادگیری تعامل وقتی که گفتیم که مرد می‌بینه زن می‌شته، مرد باید یاد بگیره حرف خوب بزنه. زن هم باید یاد بگیره از حرفای اشقامیز و حرفای که خوبه. خدا توصیه میکنه به حرف نیک زدن، بهترین حرفا را بزنن ندف حسن، ندف احسن، ندف احسن، احسن، و عبادی عباد يقول التي هی احسن. بندگان من بگن بهترین حرفا را بزنن. نه گفت حسن گفت احسن یعنی صيغه بهترین حرفا چرا؟ این شیطان یانز شیطان نزغال داره یعنی یک حرف تو ترفق نداره حرفت بد نیست ولی که خانومت بد میفهمه یا خودت بد می‌فهمی به خاطر همین کن از بهترین الفاظ استفاده برید لفظ تدافع نش اختلاف بیاد و همچنین کوشش همچنین رفتار و تعاملت باید تعامل رو یاد بگیری و راهشم راهش مطالعه و تحقیق هست همونطور که گفتم همونطور که ما اهمیت بدیم به شب عروسی و زفافمون از سرخاب های 10000 تومانی و از لباس های 1 میلیون تومانی بکرین و 2 میلیون که هیچ صدات ده میلیون نمبره. از اون کرایل کردن نمیدونم ظرف و ظروفو نمیدونم غذا طرفی صد میلیون خرج میشه ولی که خانم اون داماده نمیره یک کتاب 10000 تومانی جورش میاد 10000 پول کتاب بده یا زورش میاد صحیح از وقتش رو یک کنفرانس بده چرا جورش میاد اینقدره اهمیت داره که به ظاهر بپردازی برای به باطنت بپردازی نه پردازی یعنی ظاهر بهتره گفتن به ظاهر پردازی کادوی مجمل خیلی زیبا پر از گل تو خالی بهتو بلن کادو بلن بیزن این کادو ولی توش خالی باشه این تعامل بده این زندگی بیروحه که انسان به ظاهر بپردازه بهتر خونه داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه شناخت تفاوت که قبلا بحث ببرن شويه این یعنی سه فرق مرد داره یک سری... یعنی یک سری تفاوت‌ها در مرد هست یک سری طبیعت‌ها خدا در مرد گذاشته یک سری ها در زن که با طرفه بدونن اگر ندونن مثلا مرد ندونه که سرشت ذر روی غیرت به تمش بر میپوره که حساس باشه و وسواس باشه تماس بگیره اگر اون مد در نکنه دیگه منجر به طلاقش هیچ مردی دوست نداره که زنش اگر رفت بدون اسونه مثل رقیب و عتیق ولا باشه کیا داشت چه خطا کتونه با کی چهارم میزنه با زنگ زن میزنه ها. باقی هستی با محمد. کی هستی با علی؟ ها. علی رو بیشتر از من دوست داری. پیزن میزنه حالا با خود به خود پیش میاد. این علی بعد باخ ده بار پیششه. دیگه بقیه رو نمیشناسه. دیگه حالا هم همیشه الگو گذاشته دوستانه. علی رو بیشتر از من دوست داری. خب اینها چیه؟ اینها عدم شناخت فاوتا هست. مرد تجارتش خوشش نمیاد که بالاستش راقباتی که هی دیگه بیش، هی مراقبتاتش رو این کار میکنی اون کار میکنی هی حساب و کتابش بکنه. مرد از حساب و کتاب خوشش نمیاد. این بحث خیلی مهمه تو زندگی، باید طرفین در بفهمن، مرد هم باید درک بکنه اگر زن تیامدار نه با تندی باشه، برخورد بکنه و بدتر از اون بکنه، دیگه با خش جواب بده. حتی اگه گفتم انسان‌ها شاید خودش رو کنترل بکنن، نکنن. این دیگه طبیعت انسان سرشت به خاطر همین چون سخت تحمل غذب همیترون غذب حفظ غذب نگه خش چون سخت پاداش بزرگی شر بذاشت لطق و بلکل جنن پاداش به هست بذاشت چون واقعا کار سختیه بعضی از راه زندگی گذشت زمانه ناکنید خداوند آسمانو زمین در چند روز سلطف کرد؟ شیش روز هر روزی چقدر؟ هزار سال. درسته؟ هزار سال خودمون یعنی هزار سال خداوند زمین ها رو اخرت با کُن فیکون خلقب بکنه و که با صبر با زمان حل کرد شما توقع نداشته باشید که معتادید یک روز درو حل بکنه زمان بره توقع نداشته باشید مریضیتون یک روز دروز حل بشه زمان بره توقع نداشته باشید مشکل زندگیتون امروز حل بشه شاید یک سال دو سال شاید ده سال طول بکشه شاید حل نشه بلی راهکارش جدایی نیست خشگینی ناراحتی که شوهرت دوستخته داره ناراحتی خشگین کشت کردی تو موبایل پیام دیگی راه حلش این نیست که تو به اطلاقت بگیری راه حلش نتیحتش بکنی بیت نحوه احسنی با نیکی بهش بگیری که با گذشت زمان که اون مرد اصلاح بشه نبا خشت هیچ وقت در خشت حق تو نطلب انصافم مهمه انصاف داشته باشی. ما که با فرشته نمیگنین میتونید زندگی نمیگنین نمی بشر هر بشری هم اشتباه حدش در میزنه این تو ذهنمون جا داشته باشید اگر تو ذهنمون اینه که مرد اشتباه نکنه اشتباه اشتباه حدش در میزنه باید انصاف داشته باشیم. همون تو که ما هم اشتباه میکنیم زن اشتباه میکنه مرد اشتباه میکنه راه حلش انصافه شیطان هم خوشحال نکنه که تو شیطان خوشحال میشه نقنق کردن داد و بیداد کردن فریاد کردن طلاق خواستن بیتابی کردن اینها شیطان رو خوشحال میکنه دخالت دادن پدر مادر خواهر، برادر تو زندگی شیطان خوشحال میکنه نقش دادن همسایه و دوست و رفیق توی زندگی که کار میکنه زندگی رو خراب میکنه شیطان رو خوشحال نکنید شیطان دوست داره نزغاتش با نزغاتش تو زندگی تو مشترات بندازه مشاوره. هیچ وقت در قلبتون را به بیگانه باز نکنید. دوستا کمند دشمن آدم به هر کسی اعتماد نکنید با شیخی، عالمی که از خدا میترسه مشورت بکنید در از قلبتون را به دوست رفیل باز نکنید دلسوزتون توی دنیا کمید دلسوزتون توی این دنیا کمی. فکر نکنید مادرتون دل بهتون مثل من قبلا گفتم مادر دشمنتر از همه کسی مادر دلسوزه ولی که توی بحث زندگی دلسوزی سبب میشه که تبدیل یک بشه. غم خود را پیش مادرت نبر چون اون مادره به دار به رنجت میسوزه. سوزه هیچی اخ مادرت را اندوزی که سبب بشه پا بکنه اطرار بکنه بر جدایی حالا چیه یک پرش نخریده ولی که مادره ناراحت رنجش داره از اینکه دخترش داره بیتاوی میکنه بی میخواد طلاق دخترش رو بی چون الان مشکل توی زندگی پیش اومده هیچ وقت با مادرت مشورت نکن با قاه برادرت مشورت نکن با خانواده خود مشورت نکن سعی کن با عالمی مشورت بکنید. اون کسی که نافه از خدا میترسه نه اون شخصی که از خدا نمیترسه خدا ترسان بدونید کمه س نکنید کسی دلشون, دلشون دلش به حالتون می سیزه. اعتماد به هر شخص نکنید. اولش در قلبتون رو با خدا باز بکنید و دعا، بعدش مشاوره بخوا از یک فوزش تلبیان درست اشتباه نکردید شما کوتاهیون شما فوزش متلبی من تواضع لله رفعا کوتاهی اومدی تواضع به خرج دادی خدا تو را بالا میبرد مهم رضایت خداست چون میخوای زندگی پایدار باشه استقامت بکنه مستحکم باقی بمونه شما چی فوزش می تلبی که مرد شه زن اینکه اصل اینه مرد بیا فوزش بطلبه وقتی اگر نتلبی چون مردها معمولا مشکل سازن حسین با مقصراتی که داره به خاطر همین روز قیامت مردها از زنان خودشو فرار میکنن صاحبتی و بدن از زن خودش بچهش فرار میکنه به خاطر پایمال کردن حقوق زنش و حقوق بچهش اون مرد باید پوزش به طلب از خانوادهش به خاطر ظلم و تاخیرش معمولا مردا مقصرن ولی خب اگر اون مردمون شور نداره درک نداره ما به خاطر بچه‌هامون کوتاهی به خاطر خدامون کوتاهی گوزای به انسان عزت میده نزلت من تواب علی الله رفعه خدا بارد. پیش خدا بالا میکنی می چون خاطر خدا کتا هماری مطلب قبل از آخری قبل از اینکه که بحث تموم بشه عقل عاطفه اون مردی که با زن با عقل صحبت میکنه دیونه است. مجنونه مگر زن عقل حالش کیست زن آتفه برش غلبه داره خاطر همین خدا من گفت ان ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى لان اتفشت باب شتين در شهادت دادن عاطفه برای خاله بكونه بخاطر همین باید اگر یک جای قوا خاصیم از زن دو تا زن یک مرد درست چون کی پاش باشه عاطفه برش خاله بکنه این ضعف زن مثل هم مادری که گفتن دل نیست دل مخاطب دخترش سبب میشه کی عاطفه یعنی اون برزن غلبه بکنه و دیگه حرف مرد رو درک نکنه نمیتونه بفهمه حرف مرد به خاطر همین راهکار حل مشکل اون که اون مرد صاحب گلی برزره بیاره به خانمش بده اون مرد کوزش بتنده اون مرد گذشت بکنه گفتم اصل اینه که مرد مقصره. راه حلش این نیست مثلا به فرد جلسه داره خانمش هم مریضه خانم میگه مگه جلسه ای تو از من بهتره حالا شاید اگر اون جلسه نره از کار بیرونش بکنه اون زن دیگه درد نمیکنه، اون سردردش میتونه تحمل بکنه، ولی که اون مرد از کارش اخراج شد، دیگه باید بی بمونه، بی خانمان بمونه. حالا زنی با خاطر سردردش میخواد، اون مردی بی شغلشه، عقلش هم نمیکشه، دیگه یه قاصره. مثل موبایلی که دیگه باید باتریش رو بیرون بیاری. این زن دیگه نمیتونه درفش نمیکشه، اینم نمی این با عقل به حرف زنیم. این میگیو این میگیم غلط کردی که دخالت بکنی من خودم میدونم و خودم و کارم و شغلم تو نمیدونم مرا بازنقوی بکنی این راه حلش نیست خانم عزیز ببخش ان شاء سعی میکنم که جبران بکنم اگر نتونستم الان بعدن جبران میکنم با حرفی هیچ با حرفی خوب سعی بکنه اونم حل شه و زنم اگر میخواد با من حرف بزنه اون زنم راه حلش شیه. اون زن با عقل صحبت بکنه نه با عاطفه مرد عاطفه حالیش نیست مرد را نمیتونیم با عاطفه با عشق رفتن چه که داره اون زن خود میکنه با عشق مردها اینطوری احساس میکنن که اون زن می‌خواد مزهیم نمایی بکنه با خاطر همین اگر دقیقا زیر گوشش غلط گریه بکنید حالیش نیست به خاطرها هم با خاطرها نیست راهکار علاج درمان مرد عاطفه نیست نیست بلکه صحبتی با اخر و خرق. آخرین مطلب حریم خانواده و صلح و خیر، حریم خانواده خدا میگه این حرمت نگهت داشته بشه صلح باشه به نفع خودتونه خدا از این راضی میشه خدا به همه ایمون بهش بده و خدا ازمون راضی باشه در مقابل زندگیمون زندگی مصالحه و تامیز زندگی بکنی بدون دغدغه بدون وسواس، بدون آزار و اذیت نه دیگران نه خودمون اگر دیگرانم آزار و اذیت دادن صد بکنیم تحمل بکنیم قلبمونو رو به آخرت متعلق بکنیم وابسته بکنیم دلمون رو به خدا ببندیم اعتماد به خدا بکنیم و بدونیم خداوند ما را نصرت میده همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت لا تحزن ان الله معنا تمام نگی و اندوکن نباشیم بدونیم در مقابل این مصیبت ها و مشکلات خداوند دست و ارحم و است بدونیم که خداوند به داد ما میرسه،, میرسه و بدونیم که همونطور که رسولات اصلا مثال میزنه مادری دید که بچهش به دستشه آیا مادر این مادر بچهش تو آتش میدازه فرمودن خیر، فرمودن خداوند رحمش بلاتر از این مادره نمیخواد تو بسوزی نمیخواد تو رنجش بکشی تو زندگی درد بکشی خدا یعنی دلسوز ماست الرحمن و لصف داره به ما لطیفه، رعوفه، حلیمه، وزوده الرحمن و الرحیمه دلمونو به خدا ببندیم بدونیم خیرخواه ما هست و صلح و خیر صلح و اون صلحی که خدا ازمون خواسته تو زندگی من باشه به ن خودمون هست, هست. عص ان و شیئ و هو خیرون نکن اگر قانونی گذاشت تو زندگی که سخت برای زن در مقابل من و همچنین برای مرد در مقابل زن بدونیم که این قانون سخت به مونه، اونم به آخرت اونم به نشه اینکه خدا ازمون خشنود و راضی باشه. پس حریم خانواده را محکم نگه داریم خونه محکم زیبا، فرس ثقافة شرور الإيمان ولباس الثقة ذلك خير وصلى الله على محمد وعلى آل محمد.